معلومه که بدجوری دلواختی. البته <سؤال> همه دلم نمیخواد گوشم حرفاشو صدا. با من سر کلهش پیداش. حلالت کردین. چیکار داره باها؟ الکس <سؤال> اینجا چیکار میکنه؟ چه که بفهمی هنوز تو اما تو اون کسی دیگه ی عکس تو رودیوار ببینن. تو جوی من بودی چه فکری میکردی؟ برای مهمه که قبل نرد کرد. عشق و بیزینس من عاشقشم. هرارت میخواد که تو با من استدواج کنی واقعا فکر میکنی باباش منو فیل میکنه میاد سراغت تو موتوریا آسفها یه عمر رو قلبم داره سنگینی می‌کنه جای دختر من رنا فیک علمتریه و منم نمی‌شه دخترم دل داشته باش. کلی سالا رو از دستم من دوزی به این وسط نیست یا همین الان برمیگردی شرکت بابات یا پول منو به من برمیگردی صبر هستی تا باخت خود مهریه ش بذاریش این حمات اعتماد داشتم منو تهدید می‌کنی مهریه می‌خوای چه بلایی بزنی منو افش می‌کنی اوه آدم شه غلطی گفتم من میذارم داداشو بردار سلام بابا جون بابا هنوز حالا میاد بیریم بابا جون چرا انقدر؟ دیر نابد کاری واسهش پیش اومده تا بگی خواب. بابا چجوری بخواهم دارم میمیرم از دلشوره بابا دلشوره واسه چی دخترم؟ میاد می‌بینیم دیگه نه اونو نمی‌گم که فردا 8 صبح قراره ببرنم اتاق عمل راحت باش مشو هیچ اتفاقی نمیفته بابا میگم امشب تونتون برام عکس و فیلم بفرستین و من میمیرم از خوشی باش اوجو چون واسه میفرستم حالا راحت بگی بخواب قربونت دارم بابا یا قد دلم هم می‌خواستم شب اونجا باشم مثلا اگه میشه بدون خواهرت و مادر داری میرین شما خب که نشد بابا حالا ان عروسیش ایشالا. بزا منتظر اکسا هستم و بابا باشه باباچون بگی بخوا کاری نداری؟ خداحافظ عزیزه ستانه جان پیجوان هنوز بر خونه من خیلی نگرانم آخرین بار که تلفنی باش صحبت کنم گفت میاد میان نفهمیدی چرا رفته به ماهی سرا؟ آخه قرار بود امروز نره ماهی خب منم میام نه نه نه من نمیتونم خونه ببونم من اطباً میام دبی در منتظره شما می‌فرمایید پروژه خوبی برای موندنش تا این وقتش داشته باشید نصف جونم <تصفيق> بود تو نگهبال نداره؟ اینجا نداره بلی تو خود مایسارا ما چرا داره به کی داره زنگی زن؟ یکی از قدیمی های اینجا است نش مرتزاست معمولاً کلید اینجا را داره خیره اینشالله علا مرتزاست اینقدر دیر کردی مادر دلم شور افتادیه کم کارم پول داشتیدشا می تو گم کنم؟ نه برون ساندویچ خورده خوبی مادر بله خوبم خامچ کنم چراغ؟ من توی اهداریه ببینم. a escola hoje. از چه سر تلفن شو جواب هشت شد هلی چیزی هم هست مثلا چی مواد مشروب الکولی یه وقت چیزی خورده یا کشیده یه بار فقاش نفته بیرون فیستار منگ نفسرون محلی هیچی نیست اون حتی تا حالا لب سیگار نزده همشان هم غربود بیاد خونه که با هم بریم به خواستگاری معمولا شبا تا که اینجا میمونه ساعت ما یعنی نداره بعض وقتا پنج و اعزار میره خونه بعد از تا آخر شب میمونه. امشب هم قرار بود که زودتر بیاد خونه. این تدبین منظر داره؟ نه نداره حالا حالا این فرمایید که چیکار کنیمنی؟ شما دقیه سوال من جواب بدید گزارشتان بنوویسم پنج بودم تو آگاهی اونا پیگیری میکنم شما چه حس منلی نیست ضات اتفاق ممکن افتاده باشه تا بررسی نشه چیزی نمیشه. گوشیم موبایلش دسته کیه؟ مستمد. تو اتاقش بود من برداشتم حواستون به زنگ موبایل باشه اگه آدم با باشه اعتمال داره باتون تماس بگیرم گوش به زنگ باشه. سلام سلام بچه سلام سلام, سلام. سلام. درخواستو با امو دادن حاضر میشه بخ چرمزه سری میکنه کار کارو ردیف کن با ندار حرف زدی کتا نمیاد بیه جوری منصرفش کن بذاره اجرا خیلی بد میشه فعلا که پا گوزه شروع خیلی تا تو من از این کار منصرف کنه آرش کجاست نمیدونم هر روز دفتر باشه رونا این کار هر چه سریع باید پیش برو به پول برسیم من یعنی من خیلی گرفتار میشم شرکتو باز الو سلام الو باش خدا برسو باش. من نظری هر کاری میکنم اپ نمیشه. مطمئنی؟ بله. اشکال از اینترنت نیست؟ نه امتحالش کردم اصلا یه مشکلیه باگیه مال برنامشه. آقا آرش بعد برسه دیگه کار اونه. مرسی. من برم شرکت پیشو با فعلا آقای شریفی میگیره. ولش کن بابا، ای پترات چی میشه؟ الو؟ سلام علیکم آقای شریفی. ببخشید، نیستن آقای پژمان؟ می‌خواستم راجع به یه کاری تو شرکت باهوشون صحبت کنم. شما؟ بله. خب انشالله که خیلی حتما بر میگردن من موضوعه میتونه نمیشم بعدا زنی میزنم با خودشون صحبت میکنم خدا نگهدارتون. داره چی گفت؟ خیلی ناراحت بود گفت از دیشب خونه داریم دنبالش میگردیم یعنی چی؟ دیشب قرار خواستگاری داشتن پیو برو لباس بباش برو شرکت نکنه این چیزی شده باشه به نزن تو. یعنی چی شده؟ من چه مردم خب وقتی نایمد من یه اتفاقی افتاده میخوای من باید بیام شما کجا بلنشی بری و تشک کنه آشه نخورده و دهنه سوخته خب ما برم آزداشم شرکت حالا اول دورابوی هم که نداشت آچ یهو سر کلش اینجا پیدا شد بدلدیتون بعد را ندید هیچ اتفاق بعدی نمیه چطوری با چطوری دل شورش داره الو سلام با اوننه چه داره؟ داره به هوش میاد همه چی خوب بود کداراشوگی مشکلی هم پیش نهیم بچهاش چی؟ خوبه فقط یه چند روز باید تو دستگاه باشی برای چی؟ زود به دنیا اومده نه ولی یکم ضعیفه البته مشکل خاصی هم نیست عکسش هم براتون تو فرستادم ندیدی؟ نه, نه انوز آقا چی شده؟ نه چیزی نشده صبح پونه گفت از مراسم دیشب عکسی نفرستادیم تو تو اتاق پونه ای؟ نه این دیشب دیشت نایمده خونه نمیدونم چی شده کجاست یعنی خوستگاری نرفتیم نه نرفتیم چرا چه اتفاق افتادی نه ما ما اینجا تو چرکتیم پولیس داره بررسی میکنه وای خدا نمیدونم حالا این موضوع چجوری به فونه بگم ما بریت گفت بودیم که بروز پیش شما باشی اون مسئله نیزه اون خودم یه جری بهش میگم میگم پا تون درد گرفتون نتونستیم بی من بلیت میگیرم این خودم یام تیرون نه بابا نه نه تو باید کشه فونه باشی نه پس لقا منو بیخور نذاری ناغا جون آشو خداحافظت خداحافظ خداحافظ خداحافظم من حسابدار شرکتم خاطف حساب دوی شکل کن داخل شمچه دست رو میرید خودشون خودشو مرد چی کنه جوان مردی خانم جوان مردی خودشو مردی چشم بفهم چه خبری جاشه شده آقا پشمال دیشب خونه نمفته ماشینش که اینجاست سامانم از صبح نایمده خبر داشت نزدهش؟ نه اینه شماره شماره شماره برای این روز با هم درگیر نشده بیاتون رفته چرا رفتی به ماجره داره میگن شاید برگشته میشه شب با هم در باشون به با هیچی برگرده خاطر که ساوان آدم آقا ما خیانت کرد سامانه. ا zdjęمه خطا دیرمو دلرگیر دی리즈شون با سامان افسری کجا اتفاق افتو؟ اتاق آقای شریفی اون بالا. شما شماره‌شو دارین؟ بله الان براتون میارم. ایشون حسابدار آقای شریفی هستم 3 4 سالی است که پیش ما کار خانم خانوم، چشتون چی شده؟ چیز خاصی نیست. دیروزو دلگیرم شد جداشون کنم. دستشون خود تو صورتام. باش، یه شماره‌شو بیارید برام هم یه سری سوال از ذات. باشه. کجا چنته اینجا پنگ نفر بیشتر کار نمی ولی تو ماهی سرا ادامون بیشتره دوازه نفر نفری شما مسئولیتت چه اینجا؟ ما سرکارگرم بعضی وقتا اینجا و بعضی وقتا ماهی سرا به هموریا من خیلی میترسم بخش آماره سامانو میخواهن نه من نکردم ولی خب میترسم دیگه نه خیلی از باشه بتاییم زنیم چی شد شماره الگر منتظر Mira payına ki su evi açtım نمیاتر کار میکنم سلام بفرم سلام سلام سلام چیز شده چطور آشوفتی دیشب بد خواهید چی شده هلنه نمیاد بگره بزرست بادنچ من صد باره اینو برای شما توضیح ندادم. فرق میکنه این دفعا جامعه چه فرقی میکنه اگه قرار باشه همه این کار رو من انجام بدم پس برای چی به شما حقوق میدیم ببخش خوری شده؟ نه. ای چی شد؟ همش پیرکت و دوباره از رفتن ناتمام شد. درستش کن کار داری. ش میگه آدمی کیف پوله؟ کیف پوله؟ فلفاش هم توش کد؟ فلفشت میذیم تو کیف پوله. یه عالی. آرش؟ آرش کوچه؟ سلام فریده جون. حمام. به بخشی سر سرزده اومدم. فکر کردم شاید اگه تلفن بزنم قبول نکنیم که بیام. این چه حرفیه خانم؟ خیلی ممنون. راستش رو بخواید بعد از این همه سال خیلی سختان بود دوباره بیام اینجا. این چه حرفیه حمام خانم؟ شما هر وقت بخواین بیان قدمتون رو چشم. ما که از شما بعدی ندیدیم. من همیشه شرمنده شما پسرم کم به شما بدی نکرده اون موقع اون موقع رو میذارم به حساب یا خامیش اما الانو نه یکی دوبار مزاهم رونا شده نه قصدش مزاحمت نبوده من برای همین اومدم اینجا کامیار هنوز رونا رو دوست داره خب دلیلی نداره که رونام هنوز دوستش داشته باشه یه چیزی تو گذشته بوده تموم شده رفته ولی برای کامیار تموم نشده همه انگیزه زندگیش روناست میدونم دل خوشی ازش ندارین ولی میخواد گذشته رو جبران کنه یه فرصت دیگه بهش بدین ببخشید ده خانم این حرفو دیگه فایده نداره رونا کسی دیگه رو دوست داره پسرتونم میدونه هم, می هم رونا بهش گفته هم رو آره دیده. نمیدونم چرا دست از سر رونا بر نمی داره نمیدونست حرفی بود حتی یه بار با هم درگیر شدم به کامیار بگین از زندگی رونا بره بیرون می‌ترسم ترسم این جوونا کار دست هم بدم بفر میید داری منتظرتونم سلام بابا سلام جانم همه چیه برای این کار من در جدید توضیح بده صرف کلومتره نه نه سابقه کار داره بابا نیاز نگاه کنم من نگاه کنم بله منگیتون پریده باره خاندم ازیت هم کردیم روز عصبی شدیم بعد سالها وقتیم دارم کارتو میدم به یکی دیگه باید خوشحال باشم با به خود قسم نمیخوام حال شما بد بشه از ندا چه خبر اختاریه نگرفتی که ازش جورت نمیکنه بهش گفتم طلاقش میدم به چه جار می؟ درخواست مهریه به نظر شما کار درست ریده رو انجام میده به نظر من مهریه حقشه شما الان دارید طرفتاری از ندا میکنید؟ نه من دارم حق نمیگم مهریه در مطالبه است یعنی فردای اون روز میتونه ازت بخواد و شما موظف هستی که مهریه شو روش یعنی هر کی میخواه تو زندگی مشارک بیاد مهریه بگیری هر کسی که دلش رو تو نما زیر بار میرفتی من همون موقعم به تو گفتم ولی تو گوش نکردی مهریه شو بذاره اجراه اون وقت میبینه که من ایش کار میکنم منم میشینم میذارم هر کاری دلت خواست میکنم به شما که گفتیم وقت کمکی نمیکنی کمک نمیکنم ولی نمیذارم طلاقشم بدهیم بابا جان، من به سینی رسیدم که خودم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم بله من کامند کارمنده را ایتون رو سلام سو استفاده چیه؟ بابارنس هم و فردی بخرم. مردابی من که نیومدم دنبال شما شما دلار میخواد. من ده هزار تا بیشتر نمیدم. قیمتش هم همینیه که گفتم. خدا نگهدار. سلام علیکم چه عجب می گاوی گوسنی چیزی بکشم لازم نکرده. حالا دیگه میری با نامزد رونا کتک کاری می‌کنی؟ نامزد؟ این حرفا رو می‌زنه من از سر خودشون باز کنم. تو چون اینجار حالیت نیست، رونا یکی دیگه رو میخواد یکی دیگه کیه؟ یه پسر آس موتوری؟ فکر کردی بابای رونا دخترشو به همچین چی آدمی میده؟ اونیش دیگه به خودشون مربوطه، به تو ربطی نداره. الان تحت تاثیر این پسر است. یه دو سه روز که از زندگیش بره بیرون، نظرش عوض میشه. یعنی چی از زندگیش بیرون؟ میگه شر به مادر رونا نش یه دختر دیگه اصلا حرفشون ازم تکلیف تو دیگه برای من معلومه بعدم برو بشین حساب کتاب کن این کاری که دو سال پشت گوش انداخ تموم کن بره. شما فقط فکر اون دو تا چتون معلومه بچه ها اونجا پول لازم دارن اگه می چیزی ب نمیگن به حرمت منه. این خونه ای رو که با پول اونا خریدی ب فرش پولشون رو بده بره کجا میری؟ میرم خونه ص کنین بر نکرده خوددم میرم ص الان میا. از آقا پیشمان خبری نشود. نه هنوز شما چرا اینجا نشستی منتظر تو بودم بونت برم خوشو خوش چرا از همه بازجویی کردن؟ چی پرسیدن؟ اینکه آخرین این که بر کهی دیدینش، کجا دیدینش، چی شد، چی گفتیم؟ حرفی از موزایده و صفتا نشد موزایده چرا؟ ولی صفتا نه کسی از ماجره صفتا خبر نداره فقط سامان سامان که؟ همون که رقم موزایده اللو داده بود از کجا فهمیده بود؟ من از ذهنم در رفتم این سامان دقیقا کیه شادی؟ نمیدونم کسی دیگه هم خبر داشت که پیجمان اخراجت کرده نه هیچ کس اونجا نبود حالا مگه گم شدن آقا پژمان ربطی به دعواش با سامان داره نمیدونم قرار از اونم بازشوی کنن گفتی سامان تنها کسی که از ماجره سفتا خبر داره آره آدمی است که حرفی بزنه نه نمیدونم اگه حرفی زد تو بزن زیرش. ای مگه میشه به مامور آگاهی دروغ بگه؟ مجبور مادر من وگرنه میگن چرا از اول نگفتی. خب میتونه بگر فکر میکردم مهم بوده. بعدشم هم آخه گم آقا چه ربطی به سفتاه و شادی داره؟ ربطی که نداره. اونایی میبرانن میارن که یه ربطی پیدا کنن. ان که سامان حرفی نزنه. ولی اگرم زد من دروغ و صلاح حالا اولو قدیمی‌ها میگفتن اون رو که حساب پاک است از محاسب چه باکس؟ از چی می‌ترسی مادر؟ امروز خیلی دیم برای پدرش ایسو. قرنگی دیدم ایش مدونه سرها بره. امروز اصلا شوک بود. حالا فلشت تو گمکری چی کار باید که؟ اصلش رو توی لبتوام دارم. تو چرا کوپی نگرفتی بیاری دفتر؟ کار داشتم چی شده آرش؟ هیچی صحبم از بودی هیچی نشده بابام چیزی گفته نه کامیار اومده سراغه نه میگم هیچی نشده خب من تو رو میشناسم از صداد معلومه ناراحتی یه مسئله شخصیه دونه من کار دارم خودم بهت زنگ میزم گدافز ادر با کارتت می تلفن بزن آره آخرش زیرش ببخشیدنم میخواستم از حال یه بیمار متله بشم یه تصادفی دیشب بردن من از اقوامش هستم از راه دورم وگرنم میومدم پجمان شریفی دیشبه بردن یه بین اومانشونه برده. او شاید باشه فقط حالش اشبیهن بگیم. باشه ایت ایدم بیدم. من خودونه اید؟ موهده به <تصح> اسپهاره نمان بازی پیمه؟ درستم ایتونه که گرفتیم ایمان خبر بیدم. ایت که بچه جو اینجا. من هم حسونی هستونی گذاشتم تو این کار آقا چه قیمتی؟ به هر قیمتی من به هر قیمتی کار نمی کنم تو هنوز دلت خونک به خدا من کاری نکردم. سامان از من استفاده کنم شدی من دارم نسبه دون میشم توی تاریکی شم آه در جریان بود زل زدم به آسمون بینکم دودی شد با صدای زنگ در یه و بارون آرید دستای خونه پر از گل داوودی شد ماه از راه رسید روی راپل نشست دکمه های غلب من گل شدم گفتم این یه ماجاز است خیلش شد به آسمون همه ی ستاره ها دونه دونه گل شدم مرا بونی ایش نزدیکیش آخرین دیگه ای پرهبونی ای یش نازنینی ای یش باد بادکم و یه جوری با میکرد اینکه تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم یه جوری تشنم کرد که میشد دریا را مثل یه لیبانام. یه نفس سر بکشم من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش اقای خود یه تپش از قلبم مثل پروان نشست روی سنجاق سرش مهرابونی ای یش نازنینی ای آخرین تیکه